چه دعایی برای رفع وسواس فکری کمک می‌کنه. بهترین دعای عملی این هست که با آدم‌های متدین و معمولی معاشرت داشته باشیم، رفت آمد داشته باشیم و از اونا کمک بخوایم. وقتی با آدمایی که راحت زندگی می‌کنن، عادی زندگی می کنند معنوس شدیم، خیلی موثر در خیلی عادی کار کردن خودمون خودمون رو سایی می کنیم تطویر بدیم. متوجه میشیم که که از کجاست بهتر برای رفعش و دفعش تلاش میکنیم. یعنی منشأش گوشه بودن طرف بوده که به بس, بس فکری افتاده یکی از مشکلات افراد بس باسید ازلته خودشون از جمع ها دور میکنن و گوشه میشن. تأکید میکنه مشکل رو تاکید میکنه